یکی از دوستهای نرگس که بعدها دوست صمیمی خودم هم شد، دختری بود به نام آزیتا. نرگس روز اول او را به عنوان خانم نقاش به من معرفی کرد. پدر آزیتا ادیب و هنرمند بود. دکترای ادبیات داشت و استاد دانشگاه بود. آنطور که نرگس گفت پدرش یعنی دکتر ابهری عاشقانه آزیتا را که تنها فرزندش بود، دوست داشت و رابطهشان مثل مرید و مراد بود. آزیتا هم پیانو میزد، هم نقاشی میکرد و هم دانشجوی رشته هنر بود. مادرش زنی ایتالیایی بود که از 20 سالگی در ایران زندگی کرده بود. خانومی بی نهایت با شخصیت و دوست داشتنی که فارسی را با لهجهی بسیار شیرین صحبت میکرد. نرگس همیشه میگفت توی خانه آنها یک جور اشق و مهر و عاطفه ناب توی فضا موج میزند که روی دیگران هم اثر می‌گذارد. و بعد به مسخره اضافه میکرد. <تصفيق> درست مثل خونه خود ما. و این چیزی بود که بعدها به وضوح دریافتم. خوشبختی هم مثل بدبختی میتواند اطراف خود را دربر بگیرد و فضای خانه آنها همیشه به آدم این حس آرامش و خوشبختی را منتقل میکرد. اولین باری که خانه آنها رفتم شب اول دی بود که تولد بیست و یک هم بود. آن شب به مناسبت شب یلدا خانهشان مهمانی بود. من قبلا از نرگس شنیده بودم که پدر آزیتا شب هر سال مهمانی به راه می اندازد که به قولی شب شعر هم بود. اکثر مهمان ها هم دوستان پدر آزیتا بودند. نرگس اینقدر در مورد آن مهمانی ها تعریف کرده بود که در عین کنجکاوی یک حالت استاضاب جان خاص هم داشتم. مخصوصاً که تا آن زمان پاتوی چنین جمعهایی نگذاشته بودم. آن شب هوا خیلی سرد بود و سوز برف داشت و ما با تمام عجله‌ای که کردیم دیرتر از همه رسیدیم. آماده شدنم خیلی طول کشید. چون هر لباسی میپوشیدم به نظرم مناسب نمی و بالاخره وقتی حاضر شدم تازه نوبت دل و های مادر بود و شیرین زبانی های برای مادر و پدرم که خیالشان راحت باشد. نرگس همانطور که به من خیلی نزدیک شده بود خیلی زود هم اعتماد و محبت مادر و پدرم را جلب کرده بود و رضایت آنها را خیلی راحت به دست میآورد. وقتی رسیدیم از ماشین های دمه در معلوم بود که بیشتر مهمانها آمدند و همین بر اضطراب من بیش از پیش اضافه کرد. خانهشان بیشتر از تصور من مجلل و قشنگ بود. از در وارد حیاتی بزرگ با باخچه های چمنکاری وسیع می شدیم که اطراف یک استخر بزرگ را گرفته بودند و از کناری استخر تا در ورودی ساختمان مسافت نسبتا زیادی بود. که با چراغهایی که از لابلای كاچهای متبق فضا را روشن میکرد جلوهٔ خاصی به اطراف میدادند و من بیشتر از قبل دست و پایم را گم میکردم آزیتا که با چهرهای گشاده دمه در ساختمان منتظر بود گفت معلوم است كجایین چرا اینقدر دیر کردی؟ یه ساعت پیش منتظرتون بودم نرگس در حالی که تون سر و را مرتب میکرد گفت خب ما فقط یه ساعت داشتیم دنبالی گل ارزون و با جلال و جبرود میگشتیم. نیم ساعت هم از دم دن تا اینجا طول میکشه. تازه نیم ساعت هم زود رسیدیم. هر به خنده افتادیم که نرگس پرسید. اول بگون آقای که ستار میزنه اومده. آزیتا با سر اشاره کرد. آره، الان میخواد به خونه زود باشیم؟ با و سرووزم رو مرتب کردم و همراه آزیتا وارد سالن شدیم. من که بی نهایت معذب و پاچه بودم دست نرگس را ول نمی کردم که آزیتا با حرس و آهسته گفت بدبخت ها چرا چسبیدین به همدیگه؟ دیگه؟ حالا اینو فکر میکنن از پشت که اومدین؟ نرگس با خون سردی و آرام گفت چه عیبی داره چیزی که قراره بعدم بفهمم بذار حالا بدونم. همیشه جوابهایش باعث شادی بود. این بار هم باعث شد که ما با خنده وارد سالون بزرگ و آرستهی خانه آنها شویم. من برای اولین بار خانم و آقای ابهری را دیدم. دکتر هری خیلی بیش از انتظارم جوان و برازنده بود. همینطور همسرش. دکتر مردی بود با قد متوسط و هیکلی موزون و ورزشکاری. که صورتی آرام و چشمهایی با نفوذ داشت و از ورای عینک پنسی با دقتی موش کافانه نگاه می‌کرد. ولی در عین حال برخورده پدرانه و اش به دل می‌نشست و خانم ابهری با اینکه قدی تقریباً کوتاه داشت و اندامی که می‌شد گفت چاق است ولی چهره‌ای علارقم سن و سالش که حدود پنجاه سال بود شاداب داشت و از ورای چشمهای آبیش با مهری خاص آدم را نگاه می‌کرد. و با لحجه شیرین و دوستانه خوش آمد می گفت. هر دو بار روی گشاده به ما خیر مقدم گفتند و به مهمانها به عنوان دوستهای سمینی دخترشان معرفی کردند. آضیدها جایی نزدیک خودشان به ما نشان داد و نشستیم. من که از خجالت نفسم بالا نمی آمد و فکر می کردم همه الان فهمیدند که اولین بار است در چنین جمعی حضور پیدا کردهام سرم را پایین انداخته بودم. و با انگوشت هایم بازی می کردم. ولی نرگس خون سرد و خندان از راه دور با همه سلام و علیه پرسی می کرد. با تشر آزیتا که گفت چرا انقدر معذب نشستی، بل اجبار سرم را بالا گرفتم و چشمم به چشم آقای تقریبا جوان که روبروی ما نشسته بود افتاد که با لبخند ما را نگاه می کرد. مجبور شدم زورکی لبخند بزنم و با سر سلام کنم. که صدای ستار همه حواس ها را به طرف بالای سالن متوجه کرد و من کمی احساس آرامش کردم و توانستم نفس تازه کنم و همه چیز را ببینم. تزئینات زیبای اتاق بسیار بزرگ پذیرایی و پله های مارپیچی که از کنار سالن به طبقه بالا می رفت و شومینه بزرگی که گوشه سالن روشن بود و قاب های نقاشی بزرگ و بسیار زیبایی که به دیوار بود. و شمدان های پای بلندی که در گوش و کنار با شم روشن بود حالت اشرافی و در عین حال شاعرانهای به سالون میداد. قرق تماشای اطراف بودم که با سقلمی که نرگس به پهلویم زد به خود آمدم. گفت اون آقای که می اینه. سبکون بخونه اگه دیوونه نشدی معلومه؟ ساکت شد. منتظر پرسیدم. معلومه چی؟ نرگس با خون سردی گفت: معلومه از اول دیوونه بودی. خنده را شروع ستار زدن آقای مهرابی قطع کرد و من منتظر ماندم که ببینم این همه تعریف به کجا میرسد. صدا از هیچ کس در نمی آمد و معلوم بود همه با اشتیاق در انتظارند. در این میان انگار فقط من بودم که همچنان محو تماشای اطراف بودم. که من هم با شروع شدن آواز میخکوب شدم. نمیدانم در آن صدا چه بود. چه سوز و شوری بود که اینقدر مستقیم بر روح و قلب آدم اثر میگذاشت. حس غریبی به آدم دست میداد که قابل گفتن نیست. شور عرفانی و روح پرور، حالت جذبه و اشتیاق، حالت خاصی که قابل بیان نیست. مصره اول را من مبوتتون صدا اصلا نشنیدم تا به اینجا رسید بازای و بر چشمم نشین ای دل ستان نازنین کاشوب و فریاد از زمین بر آسمانم میرود در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن من خود به چشم خویشن دیدم که جانم میرود آن صدای هزین و پر احساس همراه زخم تار و آن شعر پرمعنی چنان اثر کاری و آنی بر قلب من داشت که ناخداگاه اشک چشمانم را پر کرد و من که از سر شب فکر محمد با یادآوری تولدم و سالهای قبل راحتم نگذاشته بود بی اختیار دستم به زنجیر گردنم گره خورد و با این ابیات اشک به چشمم هجوم آورد و فکر کردم نرگس راست میگفت گفت که این صدا آدم را مجنون می کند. آقای مهرابی همچنان میخاند. من ماندهم محجور مهجور از او بیچاره و رنجور از او. گویی که نیشی دور از او در استخانم میرود. گفتم به نیرنگ و فسون پنهان کنم ریشه درون. پنهان نمیماند که خون بر آستانم میرود. با این بیتها مثل این بود که تمام دردهای درونم را به شهر میشنیدم، و حالی نگفتنی پیدا میکردم. در جدال با خودم بودم تا اشکم سر و زیر نشود که چشمم به همان آقای رو به روی افتاد و به نظرم آمد که با محبتی بی آزیتا را نگاه می کند. به هر حال آن شب و آن شعر و آن صدا آغاز راه دیگری در زندگی من شد و باعث علاقه و روی آوردنم به شعر و کتاب. احساس میکردم چقدر احمقم که تا حالا سر از شعر در نیاوردم وقتی داشتم هایم را که دیگر سرازیر شده بود پاک میکردم نرگس توی گوشم گفت حالا همه فکر میکنن عجب دختر ای هستی که با شنیدن این تو اشک میریزی خبر ندارن جونوولی اصلا از شعر سر در نمیاری واسه چیز دیگه داری آب قرمی گیری هم, هم گرفت و هم به فکر فرو رفتم راستی چرا من تا آن زمان نباید به قول نرگس خودم از شیر سر درآورده باشم برای اولین بار احساس شرمساری و مقبون شدن کردم در افکار مختلف قوطه میخوردم که دوباره چشمم به همان آقای روبرویی افتاد که محو تماشای آزیتا بود و به محض اینکه نگاهش با من برخورد کرد رویش را به طرف دیگر برگرداند از آزیتا پرسیدم اون آقای کیه آزیتا مرموز پرسید چطور مگه ولی نرگس اما نداد و فوری گفت ایشون مهندس کاوهی پارسای بی‌نواست که عقل درست و حسابی نداره من با حیرت و ناباورانه به نرگس چشم دوختم و او با خنده گفت ندرس بابا دیوونه خطرناک نیست فقط اینقدر عقلش کمی که عاشق این توفه نتاز شده خلاصه فهمیدم که آن آقا پسر یکی از دوستهای آقای است که دو سه سال است از خارج کشور برگشته و یکی از خاستگارهای سمج آزیتا است. اما آزیتا به دلیل ده سال تفاوت سنی که دارند موافق نیست. نرگس هم که طرفتر سرسخت آقای پارسا بود همیشه سر این مسئله با آزیتا جنگ داشت. همان شب بود که توی راه برگشت وقتی که من از مهمانی و آقای ابهری تعریف می نرگس گفت. حالا امشب شلوغ بود. باباش فالایی با حافظ میگیره ماتت می بره. پرسیدم. راست میگی؟ نرگس نرگز خون سرد و خندان گفت. به خدا؟ اصلا حافظ خون شدن خود منم از فال گرفتن آقای ابهری شروع شد و بعد اینقدر خودم با حافظ کلنجار رفتم که شدم یه پا فال که راست میگفت. چون چند هفته بعد که برای تولد آزیتا خانه شان مهمان بودیم آزیتا در اثر اصرارهای من و نرگس از پدرش خواست دیوان حافظ را باز کند و نرگس پیش دستی کرد و از طرف من هم گفت شما خودتون به نیت ما باز کنید ما پا گوشیم وقتی نوبت من شد هیچ وقت یادم نمی رود که آن شب چه حالی شدم مبهوت خوشکم زده بود آن کلمات با صدا و طرز بیان شیرین دکتر ام کرد مثل مجسمه نشسته بودم به سختی نفس میکشیدم دکتر آرام و شمرده میخ مدامم مست می‌دارد نسیم جهدی سویت خرابم می‌کند هردم فریب چشم جادویت پس از چندین شکیبایی شبی یارب توان دیدن که شمع دیده افروزیم در مهراب ابرویت سواد لوح بینش را عزیز از بهر آن دارم که جان را نسخه ای باشد ز لوح خال هندویت تو گر خواهی که جاویدان جهان یک سربیارایی، سبا را گو که بردارد زمانی برغ از رویت. وگر رسم فنا خواهی که از عالم براندازی، برفشان تا فرو ریزد هزاران جان زهر موید. من و باد سبا مسکین دو سرگردان بی حاصل، من از افسون چشمت مست و او از بویگی سویت. زهی همت که حافظ راست از دنیا و از اقبا نیاید هیچ در چشمش به جز خاک سرکویت. نفس بریده و گیچ به معنای شعر فکر می کردم که چشمم به نگاه پر از حس و درک دکتر که از بالای عینک به چشمهایم خیره شده بود افتاد نگاه عمیقی که انگار راز دل ناگو را دریافته بود نرگس آرام توی گوشم گفت خاک بر سرت آبروت رفت همه پتا و تحافظ ریخ روی آب. از ته دل خندیدم و این شد که من هم شدم مورید حافظ و به قول نرگس فالگیر قهار.